و پیروکسم بود و پریدو اینا سنگ های بسیط پاتش پشنی بعد مخلوط دو ست از اینا با هم خارا رو درست میکرد که فرنگی بهش میگن گرانیت سنگ خیلی است، سنگ خیلی سختیم. هم دلنم دل و همین دلیل هم دل مشروع با به خارا جواهر گوهر گهرج یک روزه این گوهر هم اینجا به معنی است، یعنی جواهر نیست دلیلش این است که پشت تیموزرم روز گوهر میاد که تیموزد روز گوهر میشه شکل. مگر بگیریم اصطلاح فلسفی و گوهر در اصطلاح فلسفه که یه بارم کردن کردم یه ذره هاتون نیست یه هم عرض می‌کنم گوهر یا گوهر که معربش جوهر رو در عربی به کار می‌برن عبارت از هر که وجودش مستقیماً به خودش باشه سنگ مثلا گوهره این قوطی بنده این گوهره ساعت گوهره ولی هوش گوهرنی پنکیت با اینکه هممون میدونیم چیزی به نام هوش وجود داره اما نمیتونیم نشون بدیم به کسی بگیم این هوشه میگیم پولان کف با هوشه هوش داره ولی هر رنگ ها بدون استثناء سفید سفید بدون قیده یک چیزی ممکنه کس نشون بدیم سفید یا این لیوانه یا این کاغذه یا برف یا چیزی دیگه سفیدی روش دواره اون روش میگن عرض اونی که جنبه فرعی داره که در دستور روش میگن سخت یا معنی در دستور جوهر رو گوهر روش میگن استضاء البته این از دو نظر درشون بحث می قاطی نکنید با هم در دستور اسم ذات و از جهت عمل دستوری که روش انجام میگیره در زبان بحث می کنه. در فلسفه این اسم ذات و جوهر از نظر تفکر در ذاتش بحث می کنه. و عرض یا اسم معنی، یا صفت صفت و اسم معنی هر دو در فلسفه میشه از مقوله عرب بنابرای این میگه زخارا و افتون برون آورید اینجا من نمیدونم دیگه نمیتونم بگم که این افتون مرادش همون افسون الهی یا اینکه که علمه چون دانش هم دیگه حسید توی اون ما بچه بودی فیلم علی بابا و کلگوزه و اقضایت که نشون میدهدن بابا رئیس دوزم میدهد عرفی می برای خود به خود با و اون روز فکر می کردیم که این محیاتاً جادو میکنه ولی حالا از یکی یک یک یک یک یک یک یک از این دستار جادو رو همه همون این گاراژ گارهاش دشته یکی از نام داره از دور دستور میده خودش در بام میکنه. که می کنه این از که قومی افتونه اینجا میگه که زخارا مراد سنگ فکر خاص و اراده عام به این زخارا و مطلق سنگ مرادش به و افتون برون آورید چدا راسته بندها را کلید ها قبل از این من نخوندم به دست آمدش چند گونه گوهر تو یاغوت و جاده و تیموزر یاغوت بله و بیجاده حرفه یک ارکیب این ماده اکسید آلومینیوم متولد شده. Al2O5. و خاک رس و خاک چینی که کائولن رسیدن این عمارش میشه، میشه. این تحت تاثیر فشار شدید و حرارت شدید و جریان الکتریکی شدید به صورت بلور در میاد. این بلور اگر که هیک اکسید فلز دیگری ای نباشه سفید میشه یاغوت سفید اگر اکسید فلزات دیگه درش باشه رنگ میشه اگر اکسید آهن توش باشه قرمز میشه اگر اکسید مس باشه توش سبز یا کبود میشه و انواع اصلا رنگاییه یاغوت یاغوت خودش قرمز و قرمز سیره لعل. هم قیمتشی کمی از یاغوت کمتره هم رنگش حریده تر از رنگ یاغوت بیجاده یاغوت زرده اصلا و قلبته هیچ خودم این از دهاز قیمت خود یاغوته اصلی نمیرسن حتی لرد چون یاغوت و بیجاده و که شواب زرد رو صحبار و صحبا اسم شواب زرد صحبار و بیجاده و تو یاهود و بیداده و سیم و ذر اسم این دو فلیزم سیم و ذره ولی میدونید که بعد ها سالیان سال سیم و ذر هر دو پول بوده هم سیم هم ذر بعدی میگه که شنیدم که در روزگار قدیم شدی سنگ در دست عبدال سیم این سیم یعنی نوره من پندار که این قول معقول نیم تو قانه شدید سنگ و سیمت یکی گدا کند یک درم سیم یعنی پوس گدا را کند یک درم سیم سیر فریدون به ملک عجم نیمسی بخفتن شب روز و جفت به ضوغی که سلطان در ایوان نخود این بار ذرم همینطور میگه که حافظ میگه به ذرت کشند به کنند زیور به کنند کشند در بر به کنند زیور به کشان کشند در بر من نبی نوای مسترچه کنم که زر ندارم یعنی پول ندارم و نظیرش همینطور تنگ در بیش مگیر نباوت سیم و زرش در غمت سیم شمار اشک و روخش را زرگی حال خواجه تو از کنم که سیم و درهم به عنی پوله هم به عنی فلزه بعد هم اگر پولو اسمش هم میخواستم ببرن در هم و دینار بوده که درهم یک مثخال سیمه و دینار یک مثخال زیده ولی مثخال هم با تفاوت میکرده میارش مثخالی که بیش از همین معروفه در حدوده چهار و شفت و پنگ صدوم گرمه یعنی از پنج گرم کم کمتر درهم و دینار درهم و دینار هم هر اسم یونانیه الان هنوزم هم یونان باید بروش درخم درهم و کلمه پول هم کلمه یونانی بهش میگن در یونانی بهش میگن obolis. o او o l i بر جایی که این آمده در سفرنامه ناصر خود. اگر اشتباه نکنم در شهر اخلاق واقعه در آسیای است. یعنی ترکیه امروز ناصر خوصا که میتاره میگره شهر اخلاق چنین و چنان است و دادستت مردمان به پول است حتی از اونجور پول کم کم آمده و در ایران در ایران حجیب خرص <تصفح> کنم که واحدای خیلی با ارزش رو بر اثر رقابتهای که شما نه نب، چقدر جامعه شناسی در این کار تاثیر داره دینار یه مثال طلا عراق پولش دینار دینار عراقی یه پاند بود گاهی از یه پاندن بیشتر به حالش اینقدر 50 سنت بود طنا دینار پول گنده‌ای بود ما طلا قراراری رو ما ر کردن و رو اصل رقابت غیرمونونو گوشه بودیم هزار دینار همین یه اسفال یه دیره هم بوده می کنیم دینار مثلا شاهی رو که تازه حالا خودش پنجاه دینار می شاهی یکی یک بویستامه قرون می شد دینار تازه تخصیل شدیم به پول یه پول یعنی نصف یه شاهی سه تا پول که می گفتن من پول رو ولی یادم که یه آش بیز و داشتیم یه واجی بود اما بود که خسته شدم بود ولی ابیام من نمیدونم خسته بود یا نه ولی میدونم که پسری داشت مرتزا که همچنین نبود قایم می‌شد بیش کلاپت مسابق بروش می‌گوید برو فسال یه شیری یخ خو صادقی بگیرد یک شاهی میدار که این یخ یه نفر بود در لثه یه نفری نخالی میخور خودش میکرد ولی به هر حال یه شیر میداد هنوز روی آنها سال طول قدمین که دیگه نبود وجود نداشت یه شیری به دوت جنس میخرید یخ و سبزی با هم میگرید یه یعنی بود حساب و هر حال تلمه اون, اون طرف در از عثمانی لغوی که با آدم خیلی سردست میدن پاشا بود پاشا یعنی پادشاه پاشا چیز تخصیف یافته پادشاه برای که که جوانی رئیس شاهانه در ایران برای که این رو بکنن اسم آدم های بموری داشتن پاشا ایرون هم به همین تحضیب لقب خانی رو که گفتم لقب لقب رؤسای مغل بود یعنی چنگیز خان و خلاکو خان داریم ولی تیمور خان نداریم تیمور اگرچه از چنگیز اصلا کوچکتر نبود ولی چون از نسل خانهای مغل نبود اسمش امیسه تیمور خان خان لقب رئیس قبولیر بود و خانم هم مهنس یعنی زن رئیس قبولیر در دوره قاجار لقب خانی میدادن چند تا شعرا سروش اصفهانی شاعر خیلی خوبیه خیلی خیلی شاعر خوبیه لقب خانی گرفته از ناصر فروان صادر کرده که ایشون محمد علی خان از سروش اصفهان به هر حال من بحث راجب به پول و سیم و زر و از این حرفا به خراب و افسون برون آورید چه داراست بند ها را چدید بعد میاد سر اثر چو بان و چو کاخور و چون مشکنام چو اود و تو انبر روشن روشنگولام این اترایی که اسم داره بعضش نباتیه بعضش شیوانی این اتریاد رو که لابد میدونید دوستان بهتر از من این رو میدونن یه سری پراورده شیمیایی هست که بینام میگن امین ها امین ها مواد ازوت یعنی ازوت هست و کربن و اوتیزن میتوشید و یه شاخه اینا رو بهشون میگن امینه آروماتیک، یعنی امینه های خوش بود. اینا که هزاران ازش میتونن اران در لافتگار بسازن به وقتی تمام اطراع میوجات و بدون استثناء تقریب می این کالدرای که پرتخال آم و چیست؟ پیلت برد از اون عجزایه. امین محسوسیه در روی شاخش ایدروژن از این شاخش می رو اون شاخه میرونه اون شاخه میشه پرتاقال از اون شاخه میشه می گلاب. از اون شاخه میشه می می آنم و هزاران بوی دیگری که در طبیعت وجود نداره اینا تقلیق کردن ولی قدیم که این نبوده اطریجات رو از مواد خوشبو بگیرن فقط و این مواد یا حیوانی بودن یا نبود انسان الحمدلله ازش نداشتیش هر کنه نبا یا به صورت عرط بوده یا به صورت دود بوده یا به صورت خود ماده بود خود ماده نیستی که گل صور خوب می کردن میریختن هنوز هم هنوز که هنوزه یکی های خیلی خوش بودی فرنگی به نام لوان لواند و ریز خیلی پوچی داره بسیار خوش بود برسه های پوچی رو یکی کهانه رو میگیرن موس کهانه رو میگیرن میزن در نخ میبندن این رو میفروشن شما بذارین توی چیز لباساتون شو لباساتون اون خوش میشین یعنی اون گل رو میگرفتن استفاده میشین عرق گل میرهتن او رو تفتیر میکردم چون همیشه گل نیست گل توخی همیشه نیست و اندوه عرق های مختلف از گله های خوشبومی گرفتن که عرق گل سرخش هنوز گل یعنی گل سرخ درش مونده گلاب گلاب اگه از یافت به نمیگن گلاب گلاب یعنی عرق گل سرخ گل به معنی اصلیش این کلمه باقی مونده یه اونش عرق ها عرق کاستنی عرق نارنج عرق باهار نارنج عرق اتروچ در شیراز دو خونایی دارن که آب بندیه به قول خودشون پالودی دارن و بستنی دارن علاوه بر این نیسته و عرقیات عرقیات که میدونی چا عرق کاسی هستش عرق نسترن هستش نمیدونم عرق با نارنچ هست هم. سال شربت جشونده شکر دارن میریزن جخم می اون عرقم میریزنه هم میزنه می می می بسیار چیز محصولی هم حتی اون تابعه کنی شیراز عرقی یکی این مواده یکی هم دوده که مثلا چوب اود رو می سوزوندن به نهبی که دود بکنه فقط شعله نزدن. و این بوی خشتش سعدی می که مثال سعدی اوده است تا نسوزانی خلایق از نفسش دم بدن نیاز آگن همچن درخت بابیه سعدی به برق شوق سوزان و میغه سخنش همچنان پرست آری بخش هست وقت حریفان به بوگ او و سوز کامفل هم که در جان نجمر هست نجمر آتشدانی بوده که مخصوص دود کردن مواد محسن یه شیدی مثل آتشی از اون ما که سرم داشته و دستایی داشته میگرشتن و میگوشم این قندیل بوده هیچن عرض کنم که این اود رو چوب بسیار سست و الان هم که گاهی میارن از هند و نمیارن یه باریکه برای اینکه که این زود نسوس در پین نره دورش یه مقداری مواد دیگه میگیرن که این به آرامی بسید و در قدیم هم براده اود رو یعنی اود رو مثل خاک عردیز میتردن و همراه شکر میریختن در آتش از بوی خند سخته هم خوش خودم از بوی کرمل خوش شوند. این شعره حافظ تا این ندونید چون نمیتونید معنی کنید توی اون غزل بیا تا گل برفشانیم و می در ساخر اندازیم بلک را فخت و, و در اگر قملش گرنگی زد که خونه عاشقان دیزد من ساقی به هم تازیم و بنیادش بر به هم یعنی با هم منو ساقی به هم تازیم و بنیادش بر اندازیم کار ندارم به مطلب اینجور چون بعض خواهد به هم سازییم بعدی فرون دستی از د خو لری پرسیده بود که آه این چیه برشین به همتاازیم تواسع قدی و خوری هم که داشتافش تصی می کرد هم نهای قدیم به هم تاظیم بود دشتی به هم داشتیم به همتاازیننی یعنی, یعنی می توازیم به هم دشکانری میگه خب به همسازی مینی چی؟ یعنی با هم میتونیم میگه خب که تو به همسااززی یعنی با هم می توزییم ولی به هم تازییم میگه نمیشه رو هم مییم یعنی با هم می تویم بشه اینه که این درست بعد میگه که شراب و عرقبانی را گلاب اندر قدر این که روشن معلوم میشه که مواد محسر گلاب یا علقهای دیگر در شراب درش میکردن برای اینکه که بوی شراب به نظر بعضی نادل فضیره میکرد و گاهی بسیار قوی تر رو که موجه به دیوش کردن یا نیمه دیوش کردن هم میشده مشک اگر مشک در شراب میانداختن این یه خود حال رو یعنی سکرش دیاد میشده همکن بوده به حال مثل دیوشی برید بله با اون کار اون بعد میگه بله میگه شراب عرقوانی را گلابا نرقه دهریزی نسیم افرگردان را چون دود بست میاد بیرون نصیم با این دور رو برده بریدی که پراکنده کنه تا بوی پشش به مشام ها بره پس اترگردان نصیمه نصیم اترگردان را شکر در مجمر اندازی شکر بیزن تو حایتیش این چیز در فرهنگ بیاس و لغات نوشته که شکر را همراه براده ای اود میکردن و میریخن در مجمر مهر برای این که هم دوام او رو زیاد کنه و همین که اون همراه ب بایده ما اصلا این سوز این یعنی چیه به هر حال ارسانم تو اون مشکم توی یکی از تحصیده های کی هست نکاه شب می کند سر قدر یا اوی مشک در اون شعاق و چراغ و سهرگه هایی دیرد از قصائد حافظه حالا اونو میذاریم یک بحثش که با کار ما اعتباط میدیم بنابراین اود و سندل رو دود میکردن ساید گیاه های دیگری هم بودش بود کردن بان ظاهرن یعنی زیتمشت یا چیز دیگری از همون نقف و هرهاد کافور شیره یک درختی است که در اندونزی اونجا زیاد هست و داستان های دلپذیر هست از از جزیره که داخل کافور رو درست مثل برداشت کاوچوک زخمی زدن درخت رو و زهر تو چیزی نمیذاشتن و این شیره ای او که می این اینو جمع می و یه قصه ای می خونن در باب اینکه جزیره ای بوده و این جزیره همش درخت وقت بوده و زیر نظر شاه بوده و عرض کنم که همه هم چون میدونن این مال شاهه نگهبان هم نمیذاشتن برای کسی جرئت نمی کرد که بره این جمع کنه اون روز معین که این وقت جمعاوری شده میرفتن جمع می کردن میوردن داخل خزانه و بعد بار میکردن و میدادن و مزد میدادن به یه بابای یه اگیاری میره این تو قبلا جمع میکنه میره البته از کنگ و شام در میره ولی ایلا که رشته نمیشد تو بان و تو کافور و تو مشک ناف مشک مشک ناف آهوی خوتنه نوعی آهوی از برخوتن که نافش سال به سال یه پوست درست همون جای نافش پوست میندزه هر سال اون پوست میگه بهش میگن نافه با هی نسبت یعنی مربوطه به ناف منصوبه به ناف مال ناف این پوست درش یه مادبه سرخ رنگی جمع میشد و همین جلیل گفتن خونه حالا شاید هم خونه ترکیب میشه با خون را با ترکیب و جنگش سرخ بیاد جمع میشته و کم کم به سیاهی میل می کرد و درست مثل زخمی که روش کم کم میبنده و پوست روی زخت سخت میشه تا وقتی که الاخره این پوست میافته وقتی پوست نو از گیرش رویید و کاملا بی خسر بود پوست رویید میافته این نافه هم بعضی تو مشت خوش شد این به هم میپیچه و سفت میشه و سعدی آدم ترش رو عبود رو تشبیل میکنه به نافه مشک البته معشوق ترش رو رنگ بند ترش رو باشن خیلید میگه اگر تو روی به هم درکشید تو نافه مشت تمامه دارد که بوی نهان ماند نهان نه کنم که این نافه خوش میشد و یه چیز برچل اوزیده یه شده ای و از ناف آهو میفتاد و میرفتن می نمیابردن ولی مشاله جماعت از بس که عقلشون خوب کار میکرده نسل این آهو رو برانداختن بیرفتن یه آهو رو که سالی یه نافه میتونست بده شکار میکردن برای که نافش رسیده نرسیده به همین دلیل مقدار مشکل نامرغوب تو بازار پوشنای بود که وقت استفاده نبوده ولی ناهم هم ال دیگه دید نرسیده. و هیچ وقت به ذهنشون نرسید که کار چی چیزی، کاره حفاظت شده برای درست کنن و هر سال دارن محسوب جمع کنن. و خیلی خیلی‌ها به این کار اعتراض داشتن. حافظ نگه مکوشان آهوی مسکینه مرای سیاب شرم از آن چشم سیاه داره چون بلند. ارز کنم که این معروفه که ناف های خوتن این مشت و بعد می آوردن چون بسیار بسیار مطای گرامبه های بوده از تلا و اینام گرامبه ها تر بوده یه فصل مفصلی در فقه اسلام در باب آداب خرید و بروش این نافه در اولا آخه نافه رو باید بشکافن تا بوش مشخص بشه که این نافه مرگوبه یا ناهر بود بعض وقتی شکافتن این درش بازه جنس از بهمت نیست بعد شرایط این که فعر اسمش به عربی زو و همزه و مثل فعر میریسن یعنی نافر یعنی و کم یعنی گشادن و باد کردن سبق فعر به تا عربی بود که شرایط اسلام بود ما تو دانش کده بود میخوندیم بحث و راجب این که اگر نشکافته تو شای گوشفته، تو شای گوشفته نه،, نه،, نه چه داشته آخر به دلیل اینکه کالای خیلی گرانبهای بوده و مراافت زیاد پیدا می‌شده باشه. تقلل هم زیاد میشه. چیزی که خیلی خوب بادی مشم شده و شبیه مشم بوده. البته اون بو نداشته جیگر سوخته بوده. اینکه حافظ میگه اگر ز خون دلم بوی مشم می آید عجب مدار که هم درد آهوی ختنه‌ام می خودی نمیشه. تا قاهانی میگه که از جوهری که خون جگر خورده است قیمت فرش لحله و رفشان را بر نه جگر فروش چه می‌تونه از قدر و بهای لؤلؤ و رفشان؟ و اشاره به اینکه مشک داخل جگر جگر داخل مشک میکردن و قیمت مشک می‌گفتن خیلی زیاد در حد فرش. بر الحمدلله <تصفيق> مردم در تغلب از اول ثوابق زیاد وجود داشته ولی <تصفيق> یه روزی به خاطر دارم که یه روزیام گفتم معلوم دکتر راجی وزیر بهداری بود اما در مجلس صنای و کرد من وقت دانشجو بودم دیگه مجلس کار نمیکرد. یه نثقی کرد از انوار تغلبایی که حالا کشف کردن چه میکردن چه میکردن مرغ مثلا آب می‌دادن نمک می‌شدن وزن زیاد بشه بکشن این کارهای انوار مثل 50 تقلب مختلف رو از جمله این که برای تقلب در زعفران گوشت درون گاب رو میگیرند و میپزند و ریش ریش میکنند خیلی نازوکی و بعد در آب زعفران خیس میکنند میزنند خوش خوش که شد موقع ثابیدن این همون زعفرون ثابیده شکلش هم شکل تارای زعفرونه. و خب یه مسخال که خاصی زحفه نم خدا بلیکست بده این رو که این گفت یه وقتی من داشتم خاغانی رو میخوندم خاغانی او سال 600 مرده بنابراین هرکی شعر گفتن رو قبل از سال شیستت. و اگر که, که این تقلبی بوده همون سال که بده نشده که مالا مثل چقدر وقتی بوده این مثل شده و تو شعر ساخته که هر جا که نوگلیست خطری هم حریفه اوست آریزه گوشتگاب بود بار زعفران. بله ارز کنم که این است که انواع افثان و تقلعه در جاهایی که پرس می کرده می کردن و بینید بیشت کسیت سال گوشتگاب داشتن تو زفران سابقه به و هر حال توی رو میگفتیم مرش، مرش جایزه مشک. بله. مشک و نافیه یکی دیگه از مسائلی که باید بگم این است که معروف است که به قدرت بوش نافذ و شدید که امکان پنهان کردنش نیست. اگر کسی توی خونه این مشک داشته باشه، با اون مسائل اون روزگار نمی‌تونه نهان کنه. سعدی میگه که خوی سعدی است نصیحت. چه کنتت نکنه. مشک دارد، نتواند که کند پنهان. این یکی دفهم اینکه در کشف الاسرار و عدت الابرار تفسیر که مذاق قرفا نوشته شده اونجا این مثال رو بنده خوندم که نوشته بود که وقتی که بازرگانان مشک خان کالاشون رو هم بکنن این به قدری بوش شدیده و نافذ که دزدان از پرسنک ها را به بوی این نافذ میان و کاروانو میزنه مانکه از طلاب مراسط و سبوکم هست حافظ شش شائل که میگه به بوگ نافعی کافر سبازان ترزه و شاید این بوگهنی میل و آرزوز و هوای نافعی که سباز ولی در این حال این بوی نافع هم بهش بشاره میکنه به بوگ نافعی کافر سبازان ترزه و شاید به تاب جهد مشکی از چه خون افتاد در دلها خون در دل آبو و اون نافه و اون فساد و همه اینا رو تو کنم ارکنم که این مال مشک گفته بود در کشف الاسرار که برای اینکه بتونن اینا ببرن یه سمگیس یه شیره یایس بون گلاده متعبن به نام انقوزه جوز اولش هم گواهی میده اصنیه <تصحنت> <تصحنت> <تصحنت> <تصحنت> یه چیزی بود صحافی صابران ای بابا ای بابا یه صاحبی بود آقای صابران اول شاقات و اسم کوچیک که چون میخواهم یادم نیست یادم, یادم خواهدوند الان میمونم جانسا ابرین صحافتش میگفت مثلا بعد جز کرد. این جز شوخیای هایی که مثلا کسی حالش برد میداشید یه خوده هنگوزه بگیر کفمال کن فود کن خودش داره واقعی شو بخور اینجایم که یه هنگوزه که اصلا قابل گفتن نیست تنها موردی که میشه باش یه خوده مثال درکه یه یه نمونه یه از گنده اینه بوی چای مسترس تازه خالی کرده باشه این یه ذره نشونه از اون بوده داره یه چیز بحشتناکی بعد این اسم عددبیه این ماده هم که سمقه و خیلی هم برای مهده خوبه اسمش انگودان یا انگودانه هر سشون اتفاقه هم با هم جد شروع میشه <تصفيق> <تصفيق> هرس کنم که میگه که تو کشفال افرار میگه که بازرگانان مش بارهای انگوزه بار میکنن، بارهای انجدان و ناخهای های مشت رو در او پنهان میکنن و بوی بد این انگوزه بوی مشت رو پخفی میکنه و این از شر راهزنان در امان به نظر میگنه با با اون اینقدر لابد اینقدر چیز نبوده یعنی اونقدر قریقل انتشار نبوده و هر حال این چیزی که نوشته نمیشن بعد میگه که اشکالی نداره که مطمئن که بوهر پاک داره و ناجنس و ناحلم بیش نعیلی نداره بعد میگه که این مش بوی انجران میگیره ولی مهم نیست دو روز که پهنش کنن هوا بخوره اون بوی انگوزه مرتفر میشه و مش بوی خودش رو داره و ارحال این هم نکته بود که من گفتم که هملو نقل مش و جلوگیری گیری کردن اسیده اینا رو که گیر نمیاد جایی اینا تو کتابی که نوشته نشده باید من برخوردی همجوری بخونه و یادش بمونه بگه تو اصلا مربوط مشک اینات بکر همجه بگن چون بانو چون کافورو چون مشک ناب چون اودو چون انبر اودو هم که عرض کردم انبر باز مثل مشک اطرهیمانیست توده های چربی خاکستری رنگیست که در دریای چین در سواحل اویانوس آرام به صورت بسته هایی به صورت دوده هایی از نیم کیلو تا پنشیش کیلو میاد روی آب. به که سیاد انبرن میرن و اینا رو از رو دریا جمع و میادن میگویند که این محصول است که این حیوان رو فرانسیدش بیان کشلو سی احتمالا اسم انگیزیش همین باشه فارسی بسیار قشنگ ترجمه کردن انبر نهنگ امبر نهنگ این از خانواده نهنگ یعنی از خانواده پوله بچه میزاد پوله نهنگ پیلش به 16 متر میرسه ولی کشالو از 17 متر پیشتر نمیشه یعنی یه قدری از اوز. ولی به معاتب در رنده تر. برای اینکه بلن به دلیل تنگی گلوش فقط ماهی های ریز میتونه بگیره و مقدار زیادی آب بیکنه تو دهنش بنده سی ست دهن ریز ریز ریز ریز مثل پنجره از تو این پنجره آبار میده بیرون یه مش میگو و یه مش ماهی ریز اینا هم که من یه دفعه یک درسیار بزرگی در موزه بریتانیا از تو معده این گرفته بودن بعضی که بلنستیت کردوزن و میده بگو مثلا بیس کیلو میگو توش کمی همش طعمش یکی چیز شبیه میگو در حالی که کشالو حیمان بسیار در رنده ایست سرش شبیه مرخوط ناقصه و بسیار بزرگه یعنی یک تربان تنش بود این سر. و دهن بزرگی برود که باز میشه و حمله میکنه به حیوانات دیگه و میگیره و می‌خوره، حیوانات گنده می‌گویند که این خا... اولاً روی این حیوانات بزرگ هیچه اطلاعاتی در کتاب‌های جانه برشنسینا نیست دلیلش اینه که نمی‌توین این نظر بگیرم من گیری که بعد شمی‌زاد موقع عکوشمان یعنی موقع زایمان فیلم بگیرم ازش و فیلم گرفته بودن و اون فیلم رو پخش می‌کرد به عنوان یه گفته‌ایی که تازه به دست علم اینه که این یکی این تحول اون میکنه چی میخوره مرضاش چیه نمیان بعد وقتیش اینا رو بلد خبر نداره گفتن که منم متاسفانه دسترس نمیذرم و الا اگر اینجا اینجوری به کلی خصوص شهر دانشه و اگر کسانی بودم شاید تحقیق میکردم الانم شاید انشالله همتی بکنم کار بکنم و ببینم چه آخرین کتابا در باره قشالو مثلا چی نوشته به هر حال میگوین بعضیا میگوین که این مثانه این مریض میشه و این توده چربی در مصانه او جمع میشه و بعد با زور و زج و زحمت این از مصانه بیرون میده این توده چربی رو و این هم بره گروه دیگری هم گفتن که این کاشالوب مبارزه های طولانی داره با ماهی مرکب ماهی مرکب نوی از هشت پاس بود و این مرکب چین که پخام نمیشه اگر کشیدن جای پاک نمیشه و ما باکی بودیم برای رصد کشتن از اون مرکب استفاده کردیم این مرکب سلاحه یعنی وسیله استتار اون ماهی دشمنی که بهش حمله میکنه مقادیر زیادی از این مرکب پخش می‌کنه تو دریا پشتش پخ میشه دنبال باشیم می‌گویند که قشالو با ماهی مرکب بعد اثر مثلا اختفاطی رو پیشونی این دیدن که باتش انداخته بوده و رفت از بنا نه با ماهی مرکب به حمله میکنه ماهی مرکب و جنگ طولانی بهشون در میگیره و بعد میخوره و این مرکب اون ماهی اون چیزه بسته اون مرکب هست که تبدیل میشه به انبار فرد میده اوروذه پیدا اما من این چیزایی که خوندم و با علم امروز هیچ اطلاعی ندارم که شاید اینا درست بیا نه اگر شما وسیله ای دارید که بتونید برسید و ببینید خیلی خیلی هم خوشحال میشم اطلاعاتی غیر از این اطلاعات ضد این اطلاعات یا در تکمیل این اطلاعات اگر به دست آوردید به من هم ببین اتفاقا کار من این کار متاسفانه ادب تعریفش این هست که الادب و هوه من کل شعین به طرف تعریفی که جاهز کرده هزار و ست پیش میگه ادب عبارت هم از گرفتن از هر چیزی اندکی یک در فیقه باید بدونیم یک در عربی باید بدونیم یک در فرف و فرنگی باید بدونیم یک در جانوه‌ها شانسی باید بدونیم یک زêmین شانسی باید بدونیم هیچ خودم نادوم ندونیم را همدونه و این هم ماه تو او دو تو انبر تو روشنگولب یکی رو که اسم نبورده زباده حیونی، از خانواده گربه از بیره گربسان علمای در هند و آسیا و هر حال محلش هست جانور وحشی گربه زبادم معروفه اصلا و خیلی یه صداوردار کامل ما اینجا احتیاج ده باید تو خواهران یه چیز که این کلساتی صداوردار احتیاج گربه زباد گربه همه حیوانات موقع جفجوی و موقع فرشدن موقعی که وقت جفگیریشون میرسه به یه به خصوص نرها این تمایل رو اظهار میکنه بولبول نر میخونه خروس میخونه، مورد نمیخونه قرقابل نر میخونه حتی پروانه ها این ها مثلا نقوی رقص دارن و های از کچ مطاعهند که مادر رو به دنبالش می گربه زبادم موقع فرشن اندام های جنسیش حد ای میکنه تربی زدرنگی که در اطراف دستگاه جنسی اییگوون دیده میشه ری بوش خوبه و ردی زیاده که حتی سرگین اییگون رو هم افکن داشتم او خوش دید. و این گربه رو البته کمتر محموله ولی به هر حال بوده و میگرفتن و استفاده میکردن نمیدونم که میگرش میدشتن یا اونم به حروق و الهی میکشتن مثل آقوی خوسم بر اینکه که بگیرن مازده شد در هر صورت گربه زباط هم بسیار بسیار معروفه و جز اتریات حیوانی سری معروف که اینجا حکیم نگفته ولی ما تون بحث مثلا که این در واقع این اتریات اینم حاله بعد میگه در ضمن این جستجوهای اتریات و سایر مسائل بالاخره به داروها اونام رسید دیگه همه داروها رو بشر کلو کرده و آزموهش بعد خوبه نتیجه این کار پزشکی دیگه پزشکی و درمان هر درد نه در تندرستی و راه گذر همه رازها که از نیز جهان را نیامد چونو خواستن که دنبال این نوید بود گذار کرد از آن پس به کشتی برا به کشور به کشور سا آمد کتاب وقتی کتاب داشت از راه آب می رفت راحتتر بتونست برید حالا نمیدونم یا مفتوش می که کانال کشی کرده بود و کشتیارو میروندن رودخونه می دریا که بسیار مشکل بود کشتیزانی در رودخونه بی خطره و خیلی در رایش بود بشر استفاده میفکردی اون مهود و اون کندباد این را ولی در دریا با اینکه چیزشون یه پوس گردوی بوده قایقشون کشتیشون حتی چیز ناچیز نحیفی بوده و معمولا با اینکه از ترانه خیلی دور رمی شدن ولی گاهی کشتی در خوش توفان میشد و میبرده شد و براخرین نسله میکرد این که خیلی چیز بودن و به اصطلاح میگه بازرگان سود ده چهل میبرد از خطر خیزت خطر چی که نه، از خطر خیزت خطر خطر دوم بانی بزرگی و عظمتی کار خسیبی که می کار بزرگی از خطر خیزت خطر زیرا که سود ده چهل بر نبنددگر به ترسد از خطر باز آرگان یا میرفت نکله میشد یا سود ده چهل میبرد راجب این مطلب اگر اطلاعی بخوادی که از داستان های هنری درجگی یکی که نوشته داستان سندباد وحری در هزار چمت ترجم فارسیچ هست دیش هست و میتونید مطالعه رو فرمیده اقسام خطراتی که در اون روزگار سفر دریا در بر داشته و گرفتاریهایی که بوده اونجا به صورت خیلی خیلی دلپذیر و جالب توجهی شرک دیده بزرکرد از هم پس به کشتی برات به کشور به کشور کاما چه سال چون این سال پنجه برنجید نیست از که از هم تبنجیدن یعنی رنج بردن کار سار بوده حکیم ندید از هنر بر برخیرت بسته چیز هنر جز دو میشن اون کلمه این نره نره ببینید جنت مزد کرد اونتها نر همچنین مرد مرد برای انسان هم بکار دید بعد هم زبنهای هندو اروپایی کلمه مرد و کلمه, کلمه،, کلمه جنس مذکر انسان یک بعد مردی به معنی شجاعت و جوانمتی و زوراوری و دل و جرعت و امثال یعنی مردانگی به کار دهد نر هم به همین تأثیر حتی الان هم میگن بلنگ مرد نری مرد نره ولی اون تیمید یعنی مردانه این نر معنی مردانگیه و هو صورت دیگری از کلمه خوب هو نره یعنی نیک مردانگی مردانگی نیک بعد ایجا از هنر اینجا هنر معنی اون جفته تو اون تلاش و که میکرده یکی هیچ چیزی رو راهش رو برخیرت بسته ندید به دلیل هنری که داشت یعنی دنبال می که حتی بشت ندید از هنر برخیرت بسته چه دا یه داره نفسی بکیشم دستان هره حالا شروع می توانم در بعد میگن مثلا یک ساعت نقل میگن بعد دورون می زن یه جای خیلی خیلی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 اونجا میگه که باید پست داستان رو در جالبترین جای ممکن قصد کنیم بهطوری که همه مشتاقشان گشتیم دیگر این که هیچ وقت بعد از این که داستان گفت اگه بگن بازن بگو یا بگو آقابت تا چی شد نباید بگی هیچ وقت ولی اگر عزیزی بود ستاره‌ای جز شنیدن حرفش نبود به زبان بی زبونی میگه شاهی بود امیری بود یه کسی بود که دیگه نمیشد میگه باید باید مطلب به جایی برسونه که بسیار جالب بشه و همونطوری. آگه ده بار ازش خواستن باز همین کارو باز بکنه یعنی یه جایی مطلب رو قطع کنه که دوستان مشتاقشن اینجوری دنبالش بشن. و هر حال اون چیزا مجلس معقالی هم تقریباً حدود دو ساعت میشه و یک ساعت نقر میگه مقال بعد دورون بزن اونا تا دورون اون کاشت تو چای عیران بخورم سیگاری بکشه و نه میاد بعد باقیش دیگه یه رو برویس طقیقه پستاستن رو میگه و خطوصی درست کاشم من هم کنم که میگه همه کردنی ها تو آمد به جای جای مهی برتر آور آه. نسخه معتورم هست چون این خیلی به این تحساسی و, و در حقیقت ابتدای سقوط جمعی این هست در نسخه چیز نوشته جای مهی بعد میگوید که تنها یکی از نسخه های لندن به تخت مهی یک نسخه دیگر هم گویا مال پاریس، جای مهین بعد می متن مطابق نه دست نویس دیگر نه نو تو دات نویس خودشتن ز جای یعنی پاش رو از محل بزرگتری بالاتر گذاشت خدا جای بزرگترین که ای غلط بالاتر بذاره دیگه بالاتر جای نیست که گفتن که بابا گفتن شانه میشن برای این طرفی نداره <متصفيق> این است که این مسئله از جای مهی فرد تراورت یعنی خواهش از بزرگتری بالاتر گذوش حالا این میگه بعد یه سری مسائلی میگه که اینا هم باز در حقیقت با اون موقع شناسی فیضوسی پیدای هست که مقدمه همین گرفتاری فعدی میگه به کیانی یکی تخت ساخت چه به دو گوهر اندر نشاخت نشاختن و نشاختن هر دوشت یعنی نشاندن ده. یک علیفی داریم که شبش میکرن الف تعدیه الف تعدیه با این الف یعنی الف متعدی کردن بعضی فعلها رو ما میدونی قایده مت... متعدی کردن فعل این است که آمدن یا آنیدن آخر مستر در این متعدی خندیدن خندانیدن و خندندن خابیدن فیلی لازمه خاباندن و همسالی ولی بعضی فعلها رو یه الف وسط وسط جاش سماعیه یعنی ما نمیدونیم کجاست. باید بشنویم هر زبان کجا در میارن هم سماعیه یعنی در هر مستاری نمیتونیم در بیاریم ولی در میوردم قدیم که الف تعدیهی متعدیم شد. مثلا شکفتن یعنی باز شدن صبح زم مرگ سهر با گل نو گفت نه از کم کن که بس در این باز چون تو شکافت یعنی باز شد. شکافتن یعنی باد کردن و شکافتن کسید این الف الف متحدی گشتن و گاشتن گشتن یعنی دورددن گاشتن یعنی برگردندن و زنزان اینان سوی فلان برگاشت رو یعنی روی عصفش رو برگردن گشتن و گاشتن کفتن و کافتن که همون مثل شکفتن کفتن یعنی پارشدن اناری که قاش نتاری سر درست نگم نار کپسه و کافتن به معنی شکافت دادنه مستقای کردن به باکی خوابیدن مستمونی؟ نه نه کافتن هست شاید شاید بعد دو صورت در اومده دو معنی گرفته ولی به هر حال کافتن به معنی دیگر نشستن و نشاستن نشستن یعنی نشستن نشاستن یعنی نشونده به کلمه نشافتاره از همین داریم برای اینکه ساختنش این است که موادی که نشافتی داره توحقی سودن در حقیقت میخواه کنن رو مینشونن نگاه میدارن تا این نشافتاش جوابش توحق بینید نشافتی یعنی نشونده نشافتن صورت دیگرش هم نشافتنه باید وعنی نشاندن به فرکیانی یکی تا ساخت چه ماگه یعنی که اندازه شما یه بدون گوهر اندر نشاخ یعنی اون تخت رو گوهر نشان کرد این گوهر نشان کردنه برای این یعنی ترفیه واسه هست و, و مرسق از اینه یعنی گوهر نشان البته این در حمد اصطلاح عدب هست اصطلاح عدب که یه شعری علا بر اون وزن اصلیش اجزا هم وزن داشته باشه یا لغات هم وزن بیاره اینو بهش میگن فارسی میگه که از ما بران بزر فیار خوب حریصی سر و در چین و زلفکا نشتی ست هزار در سند و زلفکا نشتی ست چین در کاشکر نبوده چنو ترک مهروی این نمونه ترسیه در کاشکر نبوده چنو ترک مهروی در کاشمر نرسته چنو سر و راستین دونه دونه و کاشمر برنم اینا این که این این دو و کاش کارو کاش مات کار بوندند برای همینه، ولی اینکه تیکهای شهر مام هم بازیندش میان داشتی، اینی گوهر نشان داد. اون یه دوکانیم یه نو تادبیزه، یه چایی معمول است، ویسی شاه با دوکاری آشیش میکیشی نمیتونی کاری معمول است. و در استلهای، در استلهای خواهی مردایی روزخونی اینا میگن که کسی که شعر میخونه میشه مردا کسی که به میخونه میشه روزخون و بر از این حرفا و مرسترخان کسی که شعر و نصر با هم میخونه مرسترخان توی پتوبتنامه سلطنی ملوسه نباعز این هست مرسترخانی از درم که به کیانی یکی تخت ساخت چه مایه به جو گوهر اندر نشاخت تون خاستی دی, دی برداشتی زهامون به گردون بر افشار نداره بگم که یک از عناصر بسیار مهم مهمی که موجب شده سلیمان و جمشید به هم اشتباه بشن همین فصت میگن سلیمانم بساعتی داشت حالا میگن قالیچه قالیچه که تازه میگن بساعتی داشت پول ارزش تعیین کردن سرعت هم این کردن همین سفر اینجوری میگه یک روزه از بابل میومد مثلا به خراسان من حساب کردم سرعت غالچست در این مقاله هم نوشتم البته این مقاله رسی مفصلی فسالی بلکه یه رساله سنام بویه پرواز در مجله ایران نامه سال دوم نسیم چاب شده افتانه اصلا افتان فکر پرواز در ذهن بشر پیش هستید پیش هستید که به حقیقت به فیضن دید ناخوای مخالف انواع مختلفی نصیب کردم تونه تونه رو نوشتم اما از جمله فرعت خالچ سلیمون هم حساب کردم در حدود ا.ف.م های دو موتوره ملخی قبلی بوده اگر هاجر به با چه چون خاصی به گردون باز داشتی چون خورشید تاوان جمعیدم گفتم جم به معنی جم تابناک قبلا نه فخورشید تابان میان هوا نشسته بر او شاه جهان انجمن شد بر تخت او شگستی پرهومند از تخت او به جمشید بر گوها افساندان روز را روز نو هاست نو روز رو منسوب میکنند به جمشید اما اینکه مهرگان رو منسوب میسازن به فرجون و جمشید و فریدون دو تا مهمترین پادشاه افاتیری هست در ذهن من بگم که جشن نوروزی رو در ادب سنتی فارسی هرگز اید نگفتن یا نوروز گفتن یا جشن بدین دین جشنی بدین دین بایستگی روزی ملک را در هر روز جشنی باز نوروز اید که می یا اید فتر بوده یا اید گرمان همین بیا که ترک فلک خام روزه کارت کرد هلاق اید به دور فده اشارت فعدی هم میگه که که چرب نه هم در دهان نه مجد دهان اگر تو باز براقی حدیث من به دهان بعید نیست اگر تو به با بازا بید. و اید نیست اگر توبعه بازاوی به اید وصلتو من خیشتم کنم قربا این اید قربا اید قدیر و نیمه شعبان از ایدهای محسوس شیعت در کشورهای دیگه گرفته نمیشه مطلقا ایده اسلامی اون دوتاست اسمشم ایده من نوروزه و اون یکی هم مهرگانه علامه دولت نوروز یکی دو تا هم نشا من سعد دولت نوروز به سهراب گفت ها زحمت سرما به سر ما بود ها در این حال هر گوهری که بغض باسی ابر از دل دریا افتاد قروان یاد کله قاقوم بر تخت سر یزک تافش خورشید خورشی این خورشید به ما ماه سر به بالین ادم بازنه ای نرگستم که زخواه و سهارا نرگست شهلاه برخواست امروز به شوقی برای شاهد بنشد که دل زاهد از اندیشه پردا <تصفح> با هر کنم چه به جمع فیدبر گوهای افشاندن به معنی پاکندن چیزی که دارای اجزا باشه وقتی که پرتاب می کنن تخش بشه دان افشاندن گوها افشاندن یعنی نثار کردنه نثارم هم یعنی چیز پاکنده دیگه یعنی ورد نداره نثار یعنی پاکنده کرد. افشاند علت دست افشا و دعما افشا هم هست ولی که چیزی توش نیست دست بر تو یعنی که دست افشا ند در دو عالم یعنی بعد از اینکه هرچی میخواد که دستم زیری من تحت آمده. هر کنم که به جامشی پرگو افشا ند، ما روز, روز نو نو در روز نخواهند دان. سر سالم نو، قرمز است آب دریم، آن صورت خالدی است آب خالدی، خال خالدی. خالدی نظرش این که اگر در نسخه هایی ضبط مشکلی باشه و در نسخه هایی یه ضبط باشه حتما اون ضبط مشکل برای برای درست و های برای اینکه این به ذهنشون درست نمینشسته و ازشان و نمونه قلب در فروسی خیلی زیاده شاید 20 که به جای کپس گفت قلب بشم عرض کنم که این شماره ده یکی هست هرموز و فرودین یه نسخه، یه نسخه، یه هرموز فرودین نه نو دست نویس دستنویس دیگر فرودینه بنابراین نشون میده که بعد به صورت بقاید غلب شده فرودین اما هرموز قسم روز اول از هر ماه در روز. به گاه شماری ایران قدیم که دوازده ماه ای روزه قاهل بودن که می‌شود شود روز برای هر روزی هم یه اسم داشته و بعد پنج روز رو هم رها می‌کردند، روز ششم به رو نوروز می بعد از تفری شدن ست دوازده مثلا روز اول هر ماه فروردین روز بوده بنابراین فروردین روز رو از فروردین ببخشید او امرد روز اوز رو هم تکیم. باز می خواستم روز از پروردین یعنی اول پروردین مهر روز روز 16 همه به هم مهرگان تیر روز روز تیزده باقی روزها هم به همین ترتیب چیز بوده دوازده تا از این اسما بلکه از این اسما اسم همون دعوای زمان است. بعدین اوری بهش خواهد تا آخر، داریم و مثلا دی رو دو تا یا سه تا روز دی داشت. کیش دی به مهره یکی دی به دینه و معنیش اینه که این دی است که پشتش یا پیشش من رو دهنم کار نمیکنه الان نه روز میاد. یا اون یکی دی این روز میاد پشتش. چهارده تا چهارده تا, سی... چهارده تا روزها اسم حمروز های ماه و بهار ماه هر ماه وقتی اسم روز و اسم ماه یکی میشده جشن میگرفتن اون مهرگان یعنی مهر روز از مهر ماه بهمنگان به نظرم بهمن روز به نظرم 22ام هر ماه باشه درست نمیدونم ولی خیلی ساده است تو فرهنگ ما نگاه کن یا قرآن خاطر می کنه که تمام روزهای ماه رو دادن این چیز خیلی دریای علمی نیست که نتونیم پیدا کنیم تو آسمونو پیدا کردیم آصال واقعی ابو رویمان هستم جدتاهای قدیم هست تا بیهت جلو هر کنم که بهمن روزش بودن بهمنگان بهمنگان معرب شده بهمن جنه منو چهرین گیر بهمن گیر رو فکر که این با اون بهمن پادشاه نسبت داره نبا ماه بهمن که بهمن جزو این فرشتگان دست بهمنگی رو از نو تازه کن بهمنجنه ای درخت موی باور از از و بیداغی تنه اورمزد و بهمن و بهمنجنه فررخ و بر فررخ از باورمزد و بهمن و بهمنجنه بر از کنند که سر سال, سال نو هرموز فتردین براسود از رنج تن دلزکین بزرگان به شادی بیاره هستند می و جام و رامشگران خواستند این مسرح دوم شد ده باره برای خیلی که فردوسی تکراشید این مثلت مجلس ها نخیست چکران این گفته شد مجلس ها را هستند می و رود و رامشگران خواستند خیلی زیاد تکراشید یک چند هنگ. با اختلافات خیلی جوجی مثل می و جام مثلا نحس کنم که اینجا آقای خالبی جام رو در مت یک نسخه رود بره مستقر دارم, دارم. پاقی نسخه هشت بود ندشته جام داشته میو جام یکی دیگه ام. من آره من به نظرم یا که نمیدونم آره من رود رو رامش رو کرنم من رود رامش رو کرنم یکیه خودش بزرگان و شادی بیاراستن می و جم و رامشگران خواهستن چون این جشن فرخ از ان روزگر به ما من دازم خود تو ما هم یادگاه خب سهید مو باقی این رو بخونه بیا خوب مخالف بودیم موافق بودیم نمیدن من با ارسامت چیزاری داشتیم روش های سیاسی رو داشتیم یا اصلا سیاسی نبودیم درست میبینید که سال‌های اخیر حکومت شاه دقیقا همینه دقیقا همینه تو بابا یواش یواش به جای رسیده بود که میگفت این رجال وبدیخت توی لگن مطبعات سیفونه کشید گفته بود یه وقت سر همین گرفتاری آخونده و اینا جماعتی حسین علاو و عصم تریفه همو گلشایان و ده نفر دیگه راز انتظام و انتظامو نقاعد بشینن جلسه ای بکنن و بعد علی فهمی که میشنه که بی اجازه شاه بوده میره گلشایان نبوده واقعا میشینن حرف میذارن که این نگرانی داره دارن اینا نگران میخورن نمیدونم چه از این ها چیزایی که اونها میدیدن اون نمیتونه ببینه که خبر رو دونمش گفتین رجال باید ریختون تو هم وقت تحمل آدمی یعنی تحمل آدمی رو در عد دکتر امینی رو نداشت الان قام و موساده خودم هکیم رو بود کنید آدم رو اصفوندار که بمون هی آور پایین پایین پایین تا رسید به حوویده حوویده شخص مورد نظرش بود که هیچ نباشه کلمه یتبایی نگرده یه قفت دادم گفته که بخوص وزیر واقعی کشور علازبت هم خوباره در بابا است که گتار عزر که نداره گفتم ترقین نداره ها جو که نمیشه داشته باشه دیگه این است که بعد آدم یاد داشته الان میخونه به چشم نگرانیا رو میبینه میگه داغور ولنکات همری میذارن گردن این بابا و اینم هر روز یکی میاد خودش تنهایی دور میگیره میره بابام که کامپیوتر نیست منم 50 دفعه گفتم آقا کدام رئیس هملیقاتی که هیئت مشاوران به از امور امریکا به اون مشکل ترین شکل دنیاه که داره یه حیات مشاهده زیادی مشکل کبه نه این دولت در دولت میشه باید خبت تو کله که ضبط نمی‌کنه یه مقداری می که گنجایش نداره وقتی از حدش گذشت عظامت پس می سن باید یادش می رسه در معارض می داده هم بعد سر مرزه هم, هم می چه می دونم چه می کردن مرحال آسل درست اینا رو می‌بینیم چشم بنابراین این که افاتیر این صحبت جمع شد که نه سانسور زندگی چیه وجود巧克力 هست نیستش هیچ مکا مسئله این است که وقتی می‌بینیم این دائم تکرار به محض اینکه کسی هم که خودش بینی پیشه کرده بلا فاصله واسه سقوط رو گفت تو تیر شادت مردا روزگار همه آن کارکش کش نه عادت افتاد چون میگه اینه اول که گفتید برای شد برای آسمون بعد هم همه وقتی که ما تو مفوط بودند و گوهر فشاندند چه کار کردن و چه کار دادن و این جشن بود بعد یه مقداری می‌گی 300 سالی به این ترتیب گفتم قبلا در داستان جمشید که در اورستا مثلا 900 ساله و این 900 سال دو بار جمشید میره میشه ابورامزدا و مناجات میکنه که زمین معادل یک سوم گردش کش میاته و میشه دو بار, بار. و در, در این روز بعد پیری و بیماری و مرگ نبود و احریمن هنوز حمله نکرده بود سیبان به صورت سپرمن بردار بودن مردم، مردها به صورت جوانهای تازه سال اونکه نوشته پونزده ساله من درسته نهد به هر حال مرد جوان، زن جوان پیری بود ایش نداشت، به همجور دنیا پرم شد بیماری اصلا نبود، چیزی نبود و مردم آفایش و آرامش دوشته بعد به این در دید بود با پرهی و بعد کم کم وقتی که نگی... نگاه کرد دکایک به تخت مهی بنگرید بگیتید جب از خویشتن بناید آه نمیشه آخو یه محله ورسه یه میخواهد یه دستور نویسم میخواهد یه آدم متفکر که فلسفه میماز همه که نمیشه که برای که کار دنیا کاری یه نفر میتسلن بعدی کسی فکر که ما نباشم ایچی نیست خب همین میشه دید به گیتی جز از خویشتن سر شاه یزدان شناست و یزدان به فیچید شد ناسقه است را अवेستا ویو گفتن که دروخ گفت جمشید اینجا به پروسی میبینید که ناصف آسی پیشه که هر دوم هر از این دو تا به حد کفایت به اصطلاح میتونه ارباب سقوطی کسبوشه ما هر کردم که در اوستا گفته شده است که فر ایزدی سه بار رسوات مرغی از جمشید گذار شد یک بار عزت مهر او رو گرفت یک بار در گرشف در گرشف و یک بار دیگه به که توانست ده ها شد بعد از این دیگه در سه نوبت همه کاره جمچید سه بار مناجات کرده چه و چه و این بعد این که فره ایزدی از اون شد دیگه مورد معیل الهی نبود لذبان به پیشیدو شد ناسه پس گرم مایدان نازلشتر بخوان چه ماید سخوان پیش ایشن سروچ از همه هر پا. باید سیفون کشید هست <تصفيق> <تصفيق> چون این گفت فاق یه جز خویشتن را ندارم چون را با من این دنیا رو جز برای خودم نمی بینم یعنی هیش کس اینجا نیست همیشه میگفت فیچارش شما کار میکرد زیاد بعد فکر میکرد خب چه بکنم نمی کنم بعد هم نمچین هم که جز خویشتن را ندانم جهان هنر در جهان از من آمد پتی چون من نامبر تخت شاهی ندی، جهان را به خوبی من آراخت چونان از گیتی کجا خواستن میگفت بروازهای تحضن وزرگ بروازه را من دارم میدونید خورخواب و از من است، هم. همان و کامتن از منم گفته که سالها چیز کرده اینا بزرگی یودهی موشاهی مرست چه گوید که دوزمن کسی پاک شاید آقای موقدان طرف کنده نگون مثل همیشه که جرعت این حضور نداشتن باید از جونش بگذاره کسی که میخواستن وقتی به این مراحل میرسه دیکتاتور یه حرف که باش نمیشه زد باش. که بگیش کنش گفت که گفت که چنگیز صاحب طراغت ناصدی منهاج سراج جوزجانی می نویسه می نویسه که من در یه ای بودم که لشکر در وارش چنگیز محمد کرده بودن و بعد اینا فلحای گوشتن و فلان اینا منم هم دوز اصلا گرفتن من حیات علمه رو رشتم و اینا این با همه ها به نعم خلاصه. و بعد هم کی هستی؟ یه چجوری رو گفتم آره من آلم چه هستم فکر کرد که واسه آدم نه اینا بعد یه مدهی سرعت میکردیم و چیز میکردیم و حرف میزدیم اینا بعد میگه که یه روزی به نصبات رو مشورت بودم طرف ندیمی کنگیز بودم یه روزی گفتش که حتما با این کار عظیبی که از دست من برامده در گیتی جابتن خواهند شد و حتنا نایدندگان نام رو خواهند نظر تو چیه؟ میگه گفتم که قربان من, من اعمان دارم که ارضی کنم اصلا فکش نمیکرده که ارضی باشه که موجود اعمان خواهند بشه خوده بله بله خلاصا محکم میکنه هاتو پیمان رو که یه وقت جلک نکنه باید میگه که ولی البته اسم شهای که خواهد بون ولی به شد کسی رو زینده که کنه برای برای آیه هی اوقاتش از این هفته شد و گفت من امان تو اینه که غریب ندارم اما من فکر می کنم که آدم دانشمند یعنی بزیار آدم نادان عبله یا <خصوح> <سید> <متضیح> <تصفيق> گفت که من دارم دشمنای خودم و کسانی با... که در رقاب اغری محمد اغری به مغالی یعنی دوزد سلطان محمد خواردشاه رو بهش میگفت اغری محمد گفته من اعوان سر حقری محمد دارم داغم میکنم من با جاهای دیگه و کسایی دیگه کار نگیرم و اونا میگن و تو بیشعوری که نفهمیدی و برو گم شد دیگه نبینام میگه خدا خواهر و نمیشه اشون گفت باید کسی بخواد بگه باید سر جونش بگذاره تازه تازه تحصیلش نداشت بلکه او چنان در خواب و کیال خودش گوزه ورهه سرچه تو ب در ها سرسده بلنده می کنید ها این توده یا پول دادن همه کچه همه کنین گفته شد همه موبادان سرسکنده نگون چاکست نه یارست این نه رو به نظر من باید این نه رو جدا بنیمیزن یعنی نه یارست چرا بگه؟ نه چون بگه یارستن و هنه جرعت کردنه مازیش میشه یارستám یارست بیارست رو مزارش میشه یارم یاری یارت درست دیگه وقتی اثنی به مزاره التظام بیاریم میشه بیارم یعنی جرعت بکنم منفی هم بیاریم میشه نیارم نیاریم نیارم نیاری نیارت یا یعنی بیارم بیاری بیارت درست چوی میشه مزاره آوردن آوردنم مزارش از آرم آری آرد یه نداری ولی بخشیم به تاکید یا نون نفشی بخوام درگیریم این یه میاد این وسط فاصله میشه به آرم که نمیگیم نمیگی بی بیارم یا نه آرم که نمیگیم نمیگی نه نیارم این حینر میشه مثل اون. و بایدی که شخص بدون اینا کدومه سخن خیش به دیگانه نمی آرم گفت شکل از دوست و دشمن نه طریق عزب است لیکن این حال محال است که فنهان ماند تو ذره می‌داری و پرده سعدی قصب است چون این گفتید م... نه ایش گفتید جرعتش چرا نه جرعتش چون چون این گفتید پر ریاضن اوی بگشت و جهان شد خود گفته چون به فیوست با فکردگار محسوس برره بکستن در و بگرستان چه, چه گفتن تو با ترس با ترس ترس با ترس و که خسرو شدی بندگی را بکوش گفت که که نه کرسی آسمان زیر به زل مگو پای ازدت من نه بگو روی اخلاف برخاک نه گزدن همون کسی شد ناس به دلشان داره اولیت به هر سو حرام به جمچید برد تیرگون گشت رو همین کافت باقی راسته با اینکه سرکشم باقی راسته با اینکه سردرشت جمچیده در حقیقت سردرشت زهاج یا جزء داستان جمچید آمده با شکست شکاست و از اینو رفت میشه بسن همون یعنی زمین مستفه یاد، یعنی قرآنش آسن، قرآنش. چون ورشید تو آن میان هوا حساب که ورسافه. الان راجب ذهن ها که اسم زنیم قبل از اینکه وارد دست بشیم. ذهن ها ظاهر کلمه مثل سیقه مبالغه از مصدر ذهن معنی خندیدن هم هست. ذهن اگر از مصدر ذهک به معنی خنده باشی، معنی بسیار خنده کننده است اما اصلا زهاک از این ریشه نیست و بسیار چنین چیزها هست مثل این که مثلا شیر و شیر و یا سیر که چهار تا سیر داریم سیر در محال روشن، سیر در محال پیاز سیر در محال گرسنه و سیر در محال وز. سیر و, و از ریشه بابلی اشتر اسم اون خدای معروف شتر شده سیر و ستیر و سیر واحد و بزنی این هشرتی به اینکه من نه خوردم سیر شده اصلا اون نداره کسیب شکلش میسه همون باشه زنها که خیلی نزدیک داره به کلمه عجیده ها در عویستا اسم این آدم آمده عجی ده های و بنده مطلبی را جبه اجده ها اتفاقن از یه داستان منتشر نشدهی جلد ثبومه قصه فیروز شاه در را که در مجلد ایران شانسی چاپ کردم داستان اجده ها کشتن ملک و من. و اون رو فعی می کنم انشالله بیارم اونجا خدمتتون برای اینکه یک مطلب مفتولی از اون بلدینیر پروپ پروپ دوشناس بینورویلی در جعفل راجب اجده ها ترجمه کردم و گذاشتم تا این فنه. برای اطلاعات راجب به ها رو بدونیم که چی هست و چجور هست و چی بود و چی نم. ولی به هر حال این اجده ها هست و در عوضا هست اجده های سه سر شش پوزه شش چش در کتاب پروپ هم میگوید که اجده معمولاً محمولا سه سر یا پنج سر یا افت سر داره این اجده های سه سر همون از یه حوض سحنه که حبلیس شاه رو زاهومی و بعد میگه ماری بر شانش روید. اولش یه مار ثابت می‌کنه، دو تا همسرش اوناش در اومده میشه سه و 6 فوز و شش پوز و شش. چشم. و راجب این اژدها ها در در انستات تحصیل های بسیار از جمعه هست. عظمه اونها است که در موارد متعدد میگوید که عجید حک فلان قرار قربانی فلان قرار و فلان قرار گاف و فلان قرار چی چی به عنوان پیشکش و به عنوان قربانی به پیشگاه فلان خدا مثل آنهیتا یا یکی یا یا یادم نیست برای اینکه او اجازه بده که دنیا رو از مردم یعنی از انسان خالی بکنه ولی هدایای او مورد قبول قرار نگیره چند بار این مطلب در عرصت ها تک شد و در صورت افتانهی ای هم میدونید که میگه مارای شونه زنهاد وقتی که در اومدن بزرگ شده نینام بعد ابلیس آمد به صورت پزشکی و گفتش که علاج که مغز سر آدم بدیم بخوره و تا اینا ساکنش و هر روزی دوتا جوانو میعوردن و میکشتن و مغزه اینا به این بارا بعد هم دوتا دوتا آشپاز دوتا آدم خیلی خوب ارمایل و کرمایل اینا فکر ازن که این خیلی به داره دنیا تویی میشه از جوان ها و نسل مردم داره برمیفته تدبیری که تونستن بکنن این از که رفتن به صورت آشپز در آشپاز خونه زرهایت مشغول کار و اینا تحنکاری که میتونستم بکنن این است که از این دو ژاپنی که هر روز می آوردن که سر اینا رو بگردن و مرزشون رو به محارای زهاد یکی شو آزد میکردن یعنی یکیش رو و مرز سب قوید قرعه و مرز سر اون دیگری رو و مرز سر گوستند با هم قاتلی میکردن میردن به محارای زهاد و به این تحتیب یکی یکی یکی وقتی اینا ادهشون زیاد میشد سطح تا دیریسته میشد که دی در یه مختیگاهی نیکرشون میداشتن یه مزداری گوستندم بهشون میدادن میگفتن که برین تو کو که کسی شما رو نشناسی و که قوم کرد از این کسانی که جوانانی که از زیر تیر زهاجون به تلامت بردم قوم کرد وجود وجودان این قدیم پد پدیم اشاره در عدد پارسی را قوم کورد میشه به هر حال بنابراین خود که شاهنامه هم لحظر خوراک سر مارش مغز سر انسان بود. و این بسیار شدیه است. اون که در حضرت میگه که آورده بود چیز رو قربانی ها اون پیش کشمار آورده بود که اهورامزده یا یعنی نمیدونم هاناهیتا اجازه بدن که این دنیا رو از مردمان توی بکنه ولی قبول شد کم بارم این تکرار میشه حالا بعد در شامنامه میگه که زنهای که پدری داشت نام مردا با این خون و اون دستانم میرسید آنها را میتالارد می که مرد به معنی انسانه به کلی مثل, مثل من در انگلیسی یا مثل عم در کراسه که هم به ونی مرده و جنس مذکره هم و انسان مردم در زبان فارسی این هم و آس رو اشتخاقش رو میاره ریشهش رو میاره بیرون میگه آس از ریشه ایست که معنی خوردنه و مردایست یعنی مردم خورد محاله. تفصیل البته با ذکر اصباد مدرک می و بعد این صفت خود زهاک بوده آجیده که مرد یعنی مردم خار. و بعد که رفته رفته این به صورت و به صورت میتولوجی در آمده کم کم این لقب متبلور شده و به صورت اسم تغیر زهاک در آمده حال که اصلا، این مردات قایدتاً باید لغا به زحاج میشه این مقاله محمد امید ساله که امیدوارم باید به دست گیرین و یکی از دوستان که داره یا خود من تیگه بکنم آقای ابن یوسف هم میدهد اینو چاپ کرده در در روز تکثیر کرده میشه ازش خواهد و باید اینجا تکثیر کنیم که دوستان چون مقاله بسیار با عرضشوی در این مورد بخونم برا در شهان همه مردات اسم پدر زحاک و زحاک هم چونست که ارز کردم اسمش اصلا ها که یعنی عجیده ها به عجیده ها من فعلا بحثی نمی کنم برای اینکه که اطلاعات مفصلی در اون کتاب رو پس اون داره و چاپ شده و میارم بی خود این وقت شما رو اینجا بگیرم من این هست که بعد مردات شده سیدر زنهاک و داستان زنهاک به این تحتیل شروع میشه و به دلیل اینکه مردم معنی مرداس رو درست نمیتهمیدن و روسی اینجا میگوید که خیلی آدم خوبی هم بود و چنین بود و بوده بود و عرض کنم که تحصیلاتی که حالا خواهیم خون حالا یکی از دوستان لطف کنه بخونه آواز به بند میتونه بخونه باید میرسه انشاللت توی خیر بود و نیک خام بود و چه بود و چه بود و زیادیت آمد و گفت بیر که قیل زیادیم دیگه کسی که پسری مثل تو داره دیگه بیخودی ای این تخت و اینا به اون چه بعدش اون بایدش, بایدش باید بره این شد و گفت ما نمیتونم این چیز دیگه اون ابلیس قبلا قول گرفته بود و صوبان دازش گرفته بود نه گفت اگر خلاف رأی من بکنی سوگند به میمونه و بعد گرفتار میشی و به هر حال راضیش کرد بعدم گفت من خودم تعطیبشی میدم. تو لذب فقط زد بده باقش با این هست بگفت میگه یکی مرد بود هم دوزگار داشت دشت صوبار نوشته باید که سالا دیدید سلحفظ عوام نمیان یعنی سوار. سوار شد از یعنی سوار. ولی این از احس و پاره یعنی خواهدتا بله بنابراین که میگن از اون که ما مشالله دانشباه دیده دا و علمای معترم میگیم درستره یکی مرد بودن در اون دوزگار به دشت صباران نیزه گذار دشت صباران نیزه گذار که فردوسی میگیم مرادش عربستون دلیلشم این هست که نیزه سلاح اصلی احرابیه و بهترین نیزه مال شهری سنام خط مثل عشق خط خط نیزه خطی بهش میگه و نیزه نه خیلی درجه که خوب بخواهد برای اینکه نه هم بسیار به محکمی چوبه منتسب باشه و کار پرمیدنش آزنا مرحال هر جفر دوستی میگه دشت سوالا نیزه گذار مرادش عرب است یکی مرد بود انداران گوزگار و دشت سوالان نیزه گذار گیران مایه و هم نیکمر همین مرد هم شاه بود هم آدم خوبی بود به جهاندار با باد سرد یعنی خدا بود باد سرد نراد آه کشیدن و کلاسه فرسیدن مدرسه شد قسمش که مرداس نام گیران مایز اسمش هم مرداس بود که داد و برترین پایه بود چند باری سکنی گفتن که داد برانی قانون هست دهش که ده بخشی شد داد برانی قانون هست و بعد برانی حدل رو اینا بگرسنش هم هم هم عادل بود و هم بخشنده من رو رازه دوشیدن این چارپایز یک هزار آمدن بی به جایی همه همه که میشه چوشید، یعنی از شیرشون برن شد از هر کدوم هزار دو دستید در از این هزار رو من هزار و در هزار نمثل یکی عدد که ما تا کنون هرچی میدونیم در این خط عنوان یه عدد در سطره عدد میدونیم هزار یعنی 999 ازفا یک چون مثلا دا هزار یعنی هزار هزار در گاهی اینا به صورت به کار میره هزار میگن یعنی بسیار اینجه هزار دفعه گفتم این کار نست عشقی های یعنی که هزار وارده گفتم نوی خورت من از این اونجایی که دفتاره میگه شاب توی ایدال عشقی هزار گفتم یعنی بسیار دفع. و عداد به صورت قید کسرک سد و و, و, و هزار و اینا به صورت قید کسرک بکنم میده عداد هم به صورت قید کلت آسمان گومه پروش این حضمت کندر عشق ترمن مهد به دو جو. دو جو حقیقتا دو جو که نبوده این چیزه بسیار کم حضبش اینه من خیلق کنم اینجا اون مل مل زنها که عفت بوده اون شاید بیورد رحنی این بوده که حقیقتا ده هزار عفت داشته بلی اینجا این که پدر او بوده است و فرمون روایی داشته و میگه که از هر تو هم دوشیدن یا هزار داشتی یعنی خیلی زیاد داشته فکر می کنم. که اینجا هزار قید کسط باشه نه عفت مرورا دوشیدن یا چهار پای زهر یک هزار آمدن دیو جای اما دیو جای یعنی شمارده می شد همان گاب دوشا به سرمان بری گاب دوشا دوشا فاعلی است ولی به توی صفت مفقولی به کار رفته یعنی گابی که دوشیدش نه که خودش بدوشه دوشا یعنی قابل دوشیدن مثل دانا که یعنی این علم داره بلو اینکه الان نشسته باشه این شسته معلوم نباشه که این حال میگه هرس نزنه که اصلا نشانی از علمش پیدا ولی دانا دوشه هم همینطور لحظه نمیخوان بگن دارم میدوشه ولی دوشه یعنی قابل اینی که بدوشه نش همون دا به دوشه و فرمانگری همون تازیت همه گوهری گوهری یعنی با عرضش با حسین حسین حسین بوزو شیرورمیش بود همچنین شیرور از هنگه برش پساونده پساونده اتصافه در حقیقت شیرور یعنی شیرده بوزو شیرورمیش بود همچنین به دوشندگن داده بود پاکتین گفته بود این شیر اینا مال کسانی که پیاش داره هر که میخواهد به دوشد ببره استفاده کنه به شیر هم کسی را که بود نیاز به دان خواهده دست بودی خواهد میومد شیر کسی میخواهد میدوشید و ازباد میگه به سر بود من این پاکتین را یکی که از مرد مهرش یه ذره مهرم در دلش نبود این پسر پسر مزحرفی که در حقیقت بیمهر بود جانجوی را نام ذهاک بود دلیل و سبکتار و این دلیل اینجا در حقیقت معنی بیپرواد معنی ملاحظات رحمه معنی اون بدیدیم که رو رفتن میگنیم دلیلش اون به قرینه محنوی نیزنیم برای اینکه دیگری که همداش میاد از این مقوله سبو سر یعنی همون سبو سر سر و سر یکی سبو سر یعنی سبو سر نخواستن که روشنه نمیده که این بچه اسمش ده بود و کجا به ای پس پشت که او رو لغمش به و میگه در فهلوی یعنی ده هزار بنابراین یعنی دارنده ده هزار اه. و یک هم دیگه به نظرم در انسال شاید در لغت نماشم این یه تردید کرده